اصل پنجام ازدواج پدرم و مادرم از اول درست نبود و هیچ چیز هم نمیتوانست آن را درست کند اگر تمام دنیا را می کردید نمیتوانستید دو نفر را پیدا کنید که شخصیت آنها تا این حد با هم متفاوت باشد امروز مادرم با نظر فلسفی به این ازدواج عجیب دو فرد متضاد می نگرد. مادرم میگوید با گذشت زمان آدم شوخ تب می شود من حالا میفهمم که تمام ماجرا از اول مضحک بوده است داستان خنداور ازدواج دو نفر بوده است که از همه لحاظ و از جمله از لحاظ سنی با هم هماهنگی نداشتند اما در آن هنگام این کار شوخی آمیز نبود به جز دوران کوتاهی پس از تولد من یک دوران شهنج آور ناهموهنگی کامل بود. پدرم احساس می کرد که او را مهار کردن و به خانه و زندگی پابند نمودند. او به هیچ وجه مفهوم و علت این کار را نمیفهمید و وظایف زن و, و طبیعت بدبستان را درک نمی کرد. وقتی با میلدرت هریس هم ازدواج کرد و از همین بود. و خود او اولین کسی بود که نقص خود را در این زمینه تشخیص داد یک بار می گفت من اثمینان نداشتم که یک وقتی ازدواج کنم من دوست داشتم آزاد باشم که سفر کنم آزاد باشم که هر وقت درم خواست غذا بخورم و آزاد باشم که هر چه دلم خواست بکنم وقتی کار می کنم هم یه جهان را از یاد می برم مشکل است از دنی خواست که با من خوشبخت باشد حالان که گاهی اصلا وجود او را فراموش می کنم. ما من مادرم آدمی نبود که در چونین شرایطی خوشحال باشد. وقتی با پدرم ازدواج کرد، فقط 16 سال داشت. دختر جوان شادابی بود که هنوز میبایستی در دبیرستان باشد به مهمانی برود و با پسران فرده ملاقات بگذارد و از همه چیزهایی که در این سنید میتوان بهر برد استفاده کند. از همان اول حیبت پدرم مردی 35 ساله که بیش از دو برابر او سن داشت او را گرفته بود. گرچه پدرم قانونن شوهر او بود اما در حقیقت شخصیت بزرگی بود. چارلی چاپرین کبیر بود که دور او را حاله از اسرار و قدرت فرا گرفته بود. یا لااقل به نظر مادرم چونین مینمود. نمود. او طبیعت بغرنج پدرم را با آن اختلاط عجیب اندوه درونی و شادی برونی درک نمی کرد. از علاقه تعصب آمیز او به کار سردر در او هم شروع به این احساس کرد که آزادیش را با زندانی عوض کرده که در آن هیچ چیز شبیه به رویاهای افسانه‌ای او از عشق ازدواج وجود ندارد اما در آن های افسردگی چه پسر من واسید نیامد سرزنش تلخ از جانب پدر و های خشم از جانب مادر پدرم در لحظات خشم می‌گفت لیتا من برای خاطر تو به خانه نمی آگم. من قصد ندارم شوهر تو باشم. بعد شبهای متوالی به خانه نمیامد. شب‌ها شبها پی در پی مادرم در انتظار بازگشت او گوش به درد داشت. اولین عید پس از ازدواجشان نانا و مادرم نزدیکی های صبح صدای او را شنیدند. تلو تلو خوران از پله ها بالا آمد و وسط سرسرا ایستاد و به آنها گفت که مست است. پدرم مست کرده بود این جمله بیش از هر چیز میزان یه و اندوه او را باز می گوید. زیرا تنها آن بار بود که من در عمرم شنیدم که او در میخاری افراد کرده است او همیشه از مشروب الکالین افراد داشته است هرچه محیط خانه غیر قابل تحملتر میشد، مادرم و نانا کم کم من و سیدنی را به مسافرت های کوتاه میبردند تا از هدت وزن بکاهند. در یکی از این سفرها در شهر ساحلی کرونادو من راه رفتن را یاد گرفتم. وقتی برگشتم پدرم را با شیرینکاری های خود سرگرم میکردم. ولی مطمئنم که هنوز هم برای او مظهر زندگی خانوادگی بودم. من و سیدنی برای او مظهر چیزی بودیم که حالا به نظر او ماننده تله بزرگی می‌آمد. او در درون خود میزیست و با بدبختی خود سر می کرد. در تابستان سال 1926 پدرم که فیلم جویندگان طلا را در ماه اوت سال قبل تمام کرده بود، دستان در کار تهیه فیلم سیرک بود و هر روز عصبیتر میشد. او همیشه در دورانهای خلاقیت خود چونین بود. بالاخره به مادرم و نانا شکایت کرد که با وجود این همه آدم در خانه او نمیتواند حواس خود را متمرکز کند. پیشنهاد کرد که مرا به سفر هونولولو ببرند و سیدنی را با پرستارش پیش او بگذارند. زیرا به نظر او در کشتی نمیتواند شیر مناسب برای کودک شیرخاری مثل سیدنی فراهم کرد. نانا و مادرم این پیشنهاد را با شادی پذیرفتند. فقط بعد از آنکه سوار کشتی شدند به این فکر افتادند که چرا او سیدنی را پیش خود نگاه داشته است؟ آیا واقعا استدلالش درباره گیر نیاوردن شیر جدی بوده است یا میخواهد برادر کوچکم را از جدا کند؟ آیا وقتی از سفر برگشتند سیدنی مثلا بنگلستان به, به جایی دور از دسترس آنها رفته است؟ هر گونه در آن محیط خانواده ما به ذهن می رسید. بعد از سه هفته، اندوه و نگرانی برای سیدنی، مادرم و نانا بی که به تقاضای پدرم مبنی بر تونانیتر تر کردن اقامتشان در هونالولو وقعی بگذارند به خانه برگشتند. هیچکس کس نمی توانست، انتظار داشته باشد که چنین ازدواجی دوام کند. بالاخره در دسامبر سال 1926، هنگامی که سیدنی هشت ماهه و من هشته ماهه بودم، دوران این ازدواج به پایان رسید. من گمان می کنم که همیشه در این گونه ماجره ها، یک واقعه نهایی یک علامت تعجب بزرگ خواهد بود که مردم بتوانند درباره آن بگویند، این جریان روزی اتفاق افتاد که در این مورد این واقعی نهایی مهمانی نهاری بود که نانا و مادرم در بارتیمور برای دوستانشان که به آن شهر آمده بودند میدادند. ساعت یازده و نیمان شب آنها مهمانانشان را به خانه آوردند و انتظار نداشتند که پدرم در خانه باشد. او عادتاً خیلی دیرتر از این بیرون می ماند. اما ناگهان در میان گفتگو و خنده و شنیدن صفحه موسیقی از گرامافون پدرم بالای پلکان ظاهر شد و با قصیت و بدون چون و چرا دستور داد مهمان ها از خانه بیرون بروند. مهمانان تصدیم شدند و بیرون رفتند. مادرم به حال مرگ افتاده بود و امیدی به گذاشته پدرم نداشت. روز بعد، هنگامی که پدرم در استودیو بود، مادرم اتفاق سیدنی خانه را ترک گفت. من آن شب را نزد والدین بزرگمان بودم. نانا در خانه مادر تا به پدرم اطلاع دهد. سپس او هم خانه را ترک کرد اگر مادر و پدرم یک زوج عادی بودند جدایی و سپس طلاق آنها به تلخی انجام می‌گرفت و سپس به ناچار جریان عادی می‌شد اما اغلباً از خارج چیزی به زندگیشان مداخله نمی‌کرد که به بدبختیشان بیفزاید بدبختانه دوباره نام پدرم به صفحه اول روزنامه ها رفت اناوین روزنامه اینبار این بار انگیستر از جریان جدایی پدرم با میدرد هریست بود. اول جریان جدایی مادرم از او در صفحه اول روزنامه چاپ شد. بعد قسمتهایی از شکایتنامه چهل و دو صفحهی طلاق به چاپ رسید. پدرم به این جنجال اینطور جواب داد که توطعی برای از بین بردن حیثیت او چیده شده است. از این به بعد مسائل خصوصی پدر و مادرم به صورت سیرکی باست دست بازی گردر آمد که خلایق مشغول تماشای آن شدند. همه که از بارده این نمایش شد. وکلای دعاوی از هر دو طرف به تنظیم ادانامه پرداختند. مادر و ما بچه ها را به صورت کسانی که داشتن از گراسنگی می تصویر می و پدر را به عنوان حیولایی که از پرداختن یک دینار خرجی امتنا می کند. زنان باشگاه زنان به عنوان تظاهر همدردی شروع به جماوری اعانه برای ما کردند. روشنفکران فرانسه شروع به جماوری امضا کردند که زندگی و هنرمندان مربوط به خود آنهاست. یک دادگاه رأی داد که پدرم باید ماهی چهار هزار دلار نفقه تا تعیین تکلیف طلاق به مادرم بپردازد و حق دیدن کودکان را از او سلب کرد. و خیالوگ‌های مادرم تهدید کردند که اگر در ظرف دو ماه به رأی دادگاه گردن نگذارد او را زندانی خواهند کرد. نامه‌های بیامضا به قاضی دادگاه رسید که او را به خاطر تعیین شورای نفقه کلانی تهدید می‌کردند. یکی از طرفات موقتی این ماجرا فیلم سیرک پدرم بود. پدرم که برای دنبال کردن کار به نیویورک رفته بود، دیگر دل و حال کار کردن روی فیلم را رو نداشت. گاهی گفته می شود که شاید او هرگز این فیلم را تمام نکند. خود او از ترک هالیوود و خانه بزرگ زرد بر فراز تپه که سابقا قصد اقامت دائمی در آن داشت صحبت می کرد. گاهی نیز می گفت که تصمیم دارد این صحنه فاجه آمیز را ترک کند و برای همیشه به انگلستان برود. بعد دورت بیش از یک میلیون دلار از او مالیات بر درآمد عقب افتاده ادعا کرد. این هم یک ضربه اضافی برای پدرم بود که همیشه دیگران را برای محاسبه مالیات خود استخدام می کرد. او این بار به چنگ مشکلات واقعی افتاده بود و هر راه نجاتی که به نظر می رسید بر روی او بسته بود. روزنامه فوراً فورا گزارش داد در این بازی استجانبه فقط اموسام یعنی دولت آمریکا برنده است. و هنوز جنجال طلاق بدون تناسب با اهمیت واقعی قضیه اوج می گرفت. مطالب غیر عاقلانه که در حدت خشم و ظاهرا محرمانه گفته میشد، روز بعد در روزنامه‌ها منتشر میشد و همه آن را می خواندند. دعوا بین دو طرف به آنجا رسید که گمان می رفت هرگز حل و فصل نخواهد شد. پدرم حتی نانا را متهم کرد که او را خانه خراب کرده است. از قول او نقل کردند مادر زن من مسئول بدبختی من است او باعث جدایی من از زنم شده و حالا هم می خواهد هرچه دارم به دختر او بدهم او برای رسیدن به مقصود خود از هیچ کاری روگردان نیست اما نانا عقیده نداشت که پدرم این مطالب را جدی گفته باشد او همیشه با پدرم بهترین روابط را داشت اندکی قبل از جدایی یک روز صبح پدرم به اتاق خواب او رفته بود. او هنوز در بستر بود. پدرم کنار تخت نشسته و گفته بود من میخوام شما چیز خیلی قشنگ داشته باشید. شما خیلی خوب هستید و هرگز در زندگی ما مداخله نکرده اید. بعد جربه کوچکی را که در دست داشت باز کرده بود و سنجاق سینه ای از الماس عالی در آورده و به او داده بود. نانا چونان تحت تاثیر قرار گرفته بود که نتوانسته بود از او تشکر کند بعد پدرم خم شده و او را طبق معمول بونسیده و رفته بود نانا اکنون که به گذشته می میگوید، بیشترش را روزنامه ها درابرده بودند آنها تیراش میخواستند. از این جهت خبرنگاران نزد پدرت می رفتند و میگفتند، لیتا چون چنان چونان گفته است بعد نزد مادرم می آمدن و میگفتند آقای چاپلین چنین و چنان گفته است به این ترتیب هر روز قضی را بزرگتر میکردند و وحشتناک بود پنج ماه بعد از آنکه مادرم شکایت کرد شکایت متقابل پدرم همراه با پرواز تاریخی چارلز دیدنبرگ هوانورد به پاریس، عنوان روزنامه ها را اشغال کرد شکایت او نوید یک صفحه بود که بخصوص قسمتهایی از آن که مربوط به قیمومیت منوستیدنی بود در روزنامه‌ها نقل شد. به نظر می‌آمد که دعوای حقوقی سخت و پرسر و صدایی در شرف تکوین است. اما این دعوا هرگز تحقق نپذیرفت. حکم طلاق که در دوازده اوت 1927 صادر شد، فردای آن روز عنوان ها شد. هر دو تقاضای مادرم برای طلاق و سرپرستی من و سیدنی با اعتراض پدرم که حتی در دادگاه حضور نیافت مواجه نشد. قاضی دادگاه عالی لوسانجلیس، والتر گرین، حکم داد که تمام مطالب احساساتی و حیجان انگیز از پرونده حذف شود و این باعث ناامیدی و بیقراری تماشاچیان شد. پدرم که در جریان جدایی درآمدش به صفر رسیده بود، قرار گذاشت 650 هزار دلار به مادرم بدهد و برای من و سیدنی 200 هزار دلار تضمین کند. همچنین مخارج دادگاه که بعضی خبرنگاران آن را به 950 هزار دلار برآورد کردند و به علاوه حق وکاله وکیل خودش به عهده او افتاد. تمام جریان کمتر از یک ساعت طول کشید و در نتیجه حکم طلاق داده شد و مسئله طلاق چاپلین برای همیشه از روزنامه حذف شد. اما نشانهای رنج این ازدواج ناشاد بیش از مداخله دیگران در امور داخلی پدر و مادرم در روح آن دو باقی ماند. در اوج جنجال پدرم دچار ناراحتی عصبی شد و دو ماه تحت نظر پزشک در نیویورک بستری شد. نمیتوانست غذای جامد بخورد از این رو رژیم مایع به او دادند وزنش از ۱5 پوند به 118 پوند رسید. خبرنگاران درباره ظاهر نظار و رفتار تصدیم آمیز او گزارشهایی برای روزنامه ها نوشتند. مادرم هم در سالهای بعد دوباره دچار ناراحتی عصبی شد. در اولین ناراحتی تلخ کامی این ازدواج با تمام نیرو به سراغ او آمد. برای مدت زیادی نمیتوانست موسیقی کلاسیک را تحمل کند و اگر موسیقی واگنر به گوش او میخورد، با اندوه و درهاره به اتاق دیگر میگریخت. موسیقی کلاسیک مادرم را به یاد شبهایی میانداخت که با پدرم در کنسرت هالیوود بود، او را به یاد خود پدرم انداخت که از طبیعت عجیب و ژرف‌نای تیر روح او وحشت زده شده بود و نمی توانست آنها را درک کند اما درباره واگنر واگنر همیشه آینساز محبوب پدرم بود مادرم موسیقی او را در دوران زن وشویی با پدرم زیاد شنیده بود و نخمه های غنی و اندوهناک واگنر افسردگی و بیهودگی عمری را که در همسری پدرم گذرانده بود به یاد وی می‌آورد. تا امروز هم او موسیقی سبک جدید را بر موسیقی کلاسیک ترجیح می‌دهد. اما در هنگام طلاق به نظر می‌رسید که همه چیز به درستی حلف و فصل شده است. اعتبار پدرم فقط اندکی مخدوش شده بود و او توانست با نیرو و انرژی تازهی به تکمیل فیلم سیرک بپردازد. مادرم بعد از تحمل فشار روحی سخت طلاق به کمک نانا برای تحییه خانه زیبایی در بورلی هیل شروع به نقشه کشیدن کرد. برای من و سیدنی هم از محل دویست هزار دلار خودمان مقادیر زیادی لوازم زندگی تهیه می شد. به طوری که دیگر نگرانی‌های دوران کودکی پدرم را درباره غذا و مسکن و لوازم زندگی نداشتیم. ما به آرامی در خانه جد و جدمان در بورلی هیل زندگی میکردیم. روز 28 جنبیه 1928 مادرم که خودش کاتولیک بود من وستیدنی را در کلیسای بورلیهیل به عنوان کاتولیک تعمید داد. وقتی با پدرم زندگی می کردیم، او با این کار مخالف بود. زیرا عقیده داشت بچه ها وقتی بزرگ شدند خودشان باید مذهب خود را انتخاب کنند. اما حالا آن زندگی قدیمی ناپدید شده بود و ما همه چیز را از نو شروع می کردیم. گویی زندگی در خانه پدری اصلا وجود نداشته است. من و سیدنی در خاننگ جدمان زندگی می کردیم. و از هر گونه توجه به حد کمال برخوردار بودیم در واقع در میام همه که ما دوستشان داشتیم فقط جای یک نفر خالی بود مطمئنا ما به علت کودکی سر از این وعز در نمی آوردیم ولی در این موقع شخصی به نامونشان وارد زندگی من شده بود و با وجود آنکه خیلی کوچک بودم نمی توانستم همه چیز را از نو شروع کنم ادراکی از وجود پدرم در زمیر ناب خود من راه یافته بود که گاه گاه در حال خواب خود را ظاهر می کرد. در این موقع بود که من از خواب می پریدم و جیغ می کشیدم. در همان موقع خانوابم هم فهمیدند که هر وقت برای آبتنی به دریا می رویم تنم کهیر می زند.